تاو موسع او و چهارمین چیزی که ممکن است منسوب باشه ممکنه غیر منسوب ممیز تمیز اسماء که عددا حالانی راحت رو. و ممیز و سلاست علل ممیز سه تا ده یعنی خود علا اینجا به معنی هست این خود ده هم هست سه تا ده ممیز سه تا ده مجرور و مجموع اولا مجرور به اضافه مجبور میشه به این که از بجزه که میشه و سانیان مجموع جمع یعنی میگید سلا ست و رجال عربعت و رجال خمست و رجال تا عشرت و رجال درسته؟ و میدونید که خودمون کلمه عشره هم چیه؟ این توی عوام حسابی مرده از شده محالت یعنی اگر مرخوب بود میگیم چی اشرت و رجاله جاعلی اشرت و رجاله منصوب بود میگیم چی رهی تو اشرت و رجاله مضافونه لعن یا مجروب بود میگیم چی مرد به اشرت و جاله تو به اشرت و سلاس تو رجاره حال مزکر. به عکس میاد. بود. حالا اگر صابو میگه، سلاس و، نصاب، سلاس و، شجرات. و ممیز و ما بینین اشلت ومه ه، مز ما بین ده وصد. یعنی خود ده نیست ما بینین. خود سر هم، نیز از یازده تا نوید ممیزش چیه؟ منصوبان و مفرد منصوب است تو مفرد خود البته بین یازده تا 99 و سه گروه هم یکیش عدد یازده تا نوزده این عداد اعداد چی هست؟ هر دو جزشون مردی جز اسنای... و بردی الا عدد دوازده که این جزه چیه؟ در حالت رقی اصنا در حالت نسبی اصنای یازده و دوازدهش مطابق میان اهده عشره رجله. اشرت زاگران اسنا اشرت تی احد اشرتن تا اس تا مطابق میاد عدد اولی یعنی عدد سه تا نهش مخالف یعنی سیزده تا مرد چطور میشه سلاسته اشرت رجب سیزده تا زن چطور میشه سلاسته اشرته چی که چه اشرته رو گفتیم بیدونیم شینش رو چی کنیم ساده کنیم یون اشت این ماله عداد مرکن. سلام. عداده احود داریم تو این دسته اعداد و چطورند؟ اعداد 20-30 چیم؟ تو اینا برا مزکر است. فرقی؟ نمی برای برا مزکر است. فرقی؟ نمیکنن. و به چه شکل می در حالت رفتی با باب نون در حالت و جردی با یاب و جا انی رعای تو رجلا رجالن مرر تو به اشرین حالا یا اشرین امرد عدد دو، بعد از این دسته سوم همه اینجا عدد چی بود اعداد مرد اینجا برمج از بیست و یک بیست و میگه تا و, و نو یک تا چلو نو تا تا نو همش همش. و یک و, و دوش مثل یاد دا دوازدر بیستش که فرمه نبیکنه یک و مطابق متابقه و عشرونه برای مزکر احدا و اشرونه برای اثنان و اشرونه برای چی؟ مذکر طبالتی رقمی در اثنینه و اثنینه و اشری مال مذکر چی؟ یا سنتانه و اشرونه شده. بعد از 23 تا بیست چجور میاد؟ اشرونش برگی نمیکنه. عدد اولین تا نه برخلاف یعنی مثلا بیست و سه تا میشه؟ سلاسطن و اشرون رجبه و اشرون در حالت رفت نصمی جلیش سلاسطن و اشرین رجبه جلیش سلاسطن و اشرین باشه چجور میشه؟ سلاسون و سلاسن و اشرون رجولن سلاسن و اشرین رجولن چی امراهتن؟ سلاسن و اشرین بعد دیگه سی تا سی و همین چلو تا چلو همین حال تمیزش مفرد است و, مفرست و مفرست. تمیز سن صد برای مزکر و مؤنث یکیه و تمیز ال یعنی هزار، اونم برای مزکر و مؤنث و مصنغ ما تمیز تسلیه این دو تا تسلیه 100 میشه چی معتان تمیز ال انفام تمیز این دوتا و تسلیهشون و جمع او و جمع او رو بعد به ال چرا چون مذکر مع برمیگرده به حرف برمیگرده به اولین مجمع جمعه اویه جمعه جمع نداره نیست جمعه شده جمع جمعه جمعه میشه چی؟ آلاف علوف ها؟ هزاران خب پس مئه صد، دیویست هزار دو هزار و هزاران تنگیز این ها مجرور و مفرد مجرور از که مزاقی زیدن و مفرد میگویم مهتا رجل مهتا امرت الفا رجل الفا امرت قسمه شنو را نمی کنه رجونه، الفا رجل مهتا الفا در حالت رفتگه حالت نسبی جلیش میشه مه اتی رجل آه. و به مه اتی رجل بسید تصمیم که میشه اگه آلاف بشه یا علوف بشه میشه چی؟ آلاف و رجل یعنی هزاران مرد بطل آلاف و رجل در جنگ کلان هزاران مرد بشه آلاف و رجل در حالت رفتی نصفیش آلا فر مجرونه جرمیش آلا فر مجرور از تو میگیم سوال اینجا پیش میاد که پس جمع صد چی شد میگه و رفت از رو جمع علمه احل رفت از یعنی ترک یعنی ترکش کردن بیرون انداختن آه. ترکش کردن ول کردن جمع صد صد رو, رو جمع و رفت از او جمعه نهار حالا اینجا میگه اصول عدد اصول یعنی چی جمع اصل اصل یعنی چی؟ گیشه بیشه میگه اعداد اصولشون و اصول عدده اسم تا اشرت کلمت هست اشرت کلمت میگه اصول عدد ریشه های همه اعداد از دوازدخ عدد باشید اصناتا 10 کرد یک واحد و از یک تا 10 این میشه چند تا 10 و ومی اول هفت و بزار. بقیه از این حالا فلواه ول دو ولی یک دو یوزکران معلم مزکر یک و دو اصلا عدد نداریم اگر هم بیاد به چی میاد گفتیم؟ تحقیبی رجلان واحدون میشه چی؟ تحقیبی امراتون واحدتون به شکل صفت میشه و تحقیبی خود رجلان و امراتون دلالت و یکی تصنیه چی؟ رجلان خود عدد تصنیه است امرعتان و اگه پشتش بگیم رجلان اصنانه میشه چی؟ تحكید. لا تعبدو اداهین اسنین اگه اسنینی می آمد اداهین در پس در این عددی یک و دو یو ذکران و یو انسان محل, محل, محل. با مذکر مذکر میان با محل و اگر عددی هم باشون بیاد اون عدد عدد میست بلکه عدد چیه؟ تحکید صفت است و لا يجامعه و هما المعدود و با این یک و دو معدود جرح نمیشه یعنی اینجا نیست که عدد و معدود هر دو با هم بیان این شکل نیست بلکه خود معدود آورده میشه و دلالت برای یک و دو یا مفرد میگیم رجالان که یکی رو دلالت میکنه یا تصمیهش میبردیم میگیم رجالان دو و اگر عدد بعدش بیاد این عدد من باب و لا یا جامعه او ما معود ولی غات وقتی اینطور گفته میشه رجلان امرعتون و رجلوران براتون و برا اما سه تا ده چین میگه و صلاس و ععللت اشته به عکس اما سه تا ده یعنی خود در هم هست به عکس اینه یعنی با مزک کرد محننس با محننس با با مزداد و با معدودشون هم جمع میشند و به معدود خودشون هم چی بشند؟ اضافه بشند با معدود خودشون جمع میشن. و به او اضافه بشند و سلاساتوی در عشتته بلند نه با قولیدی تا آلا راه کنید مثالشون و سخترها علیهم هم سب علیه و زمانیت ایام سخره ها سخره به زمیر داخلش خوبه جوازی بایلش به ایام بایلش معلم هست ها مفقود سخره ها سخرا یعنی چی مسخر کرد ها رو آرام کرد سلطه داد برون جارو مجرور مدرد و سختر آقا سختر آقا علیه آسمان رو مسختر کرد بر اینها سب در هفت شب و هشت یعنی شب هشت روی کشد دیگه پرش. سب از ظرف است مفعولفی هست برای سخت خیاله اگه بگید خود چرا و عدد شده زن مفعولفی بگید عدد مزاد چی؟ از مزافره در این خودش هست زمانگیت میده زمان محسوب میشه نزا برای فید سخت خیاله میشه مفعولون زن لیال جمع چیه؟ لیده لیالی جمع لیده است. و لیله چیه؟ معنیس عددش چجور اومده؟ مذکره میده سب علیان عیام چیه؟ جمع یوم عیوان خود دیجه هم یا واقعی کرده سابقشون ساکن با قلب ده. یا یاد یا اتخابه شده عیام عیوان خب عیام جمعه یوم چیه؟ مذکره لذا عددش چی اومده؟ سمانیه اومده معنیسون سمانیه علیهم سب علیالن و سامانیه تایامون یعنی در هفت شب و هشت روز آسمان بر ها مسخر شد استیدا و و خب حتمی بود. یعنی بحث عدد رو میخوایی به اتمام برسون به کار دیگه کاملشون و تقعولو حالا نگاه کنید عدد های مرکل تقعولو اهد عشره چی چی؟ رجولن این در چه حالتیه؟ فرقی نمی کنیم حالت رفتیشن میشه چی؟ اهد عشره نزونه نفتی و جدیشن اهد عشره چرا؟ چون مبدیه فقط در حالت رفتی میگی محلن مرفو در حالت منصوب یا؟ اما اس نا اشره رجلن در حالت چی چی رفت این جاانی اس نا با چهلت می نویسید الف غلط جاانی اس نا اشره جزء اولش مراده جزء دوم به خاطرش حالت بالاتر جلیش چی میشه اسمی اشارت و اسمی عشرره بن مرضو به اس نای اشارت رجرت رجرت به اسم که میگیم هم میشه و چی بس, بس نای عشرره که بتونید برای چیز کنیم کتاب ما حالت رفتی نوشته یا حالت نصب جدی حالت نصب جدی اسم در مزکر پس در مزکر یازده و دوازده هر دو جز احدا اشرت و امرعت اشرت هر دو احدا محنن اشتر امرعت فرق نمی در حالت رفتی نسی اس نتا این الان داره حالتی چیه؟ رفعیه با عدف میشه شد اس نتا اشارت این حالت نسبی جدیش چی میشه؟ اس نتای اشارت فرمه علمه حالا سیزده تا نوزده در عدد مزکر محمده گفتیم جزه اول مخالف جزه دوم مواقع سلاسته هر دو جزم گفتم چی؟ من سلاسته عشره رجولم الا تس عشره چی چی؟ دوز اول مخالف جزو دوبار موافق به دو و با جزو اول باز مخالف جزو دوبار موافق چی؟ گفتین در حالت رفع نسبت جرد فردی چیه؟ من. ممیده. و یستویان پیشرین و اخواتها. یستویان یعنی مساوی هستند مذکر مزکر و مؤنث. مذکر هم. و مؤنث مساوی‌اند، وقتی به حالشون نمی‌کنه در 20 و اخوات 20 نظایر 20 یا بهشون میگن اعداد اوغو. چه؟ اعراب این عداده و اون چطوریه؟ اعراب ملحقه به جمع صاحبه چطور میگیم؟ اشرون رجولن بعد از این چه عدادی پیش یه اعداد ن جلیش احدن و 20 ان 1 هدا و 20 عبرت غلط درست؟ اول نسبیش 20 و 20 جلیش و 20 اعراب جزء اولش میشه چی چی حق دیری میشه نه محلی ها اعراب اولش میشه چی؟ حق دیری به چه دلیل؟ باید که علف قبول حرکت میسه موزاز اما جزه دوم چرا؟ جزه دوم برایت رفتی میشه اشنون نسبی جردیش وصنانه و اشنون نرجانه آرت رفتی نسبیش وصنه و اشرین هم جلیش وصنه و اشرین هم و حالته در حالت در و اشرین هم امرهت و باز اون چه که دیدیم در بیست و یک و بیست و دو چی بود این که هر دو جز مطابق. برگی نمی کن. همیشه یک و دو با مذکر و ما هم مطابق. اما از به بعد نگاه کنید بیست و سه و اشرون رجولن سلاستن و اشرین رجولن سلاستن و اشرین رجولن در جز اول باز شده چی؟ مخالم جز هم که گفتیم که اشرون و با مذکر سلاسون و سلاسن و عشرون امرهتن سلاسن و عشرین امرهتن سلاسن و عشرین تا و هاکزا الى تسین و تسین امرهتن میگه همینطور شما میتونید حساب بکنید تا برسید به 99 دایدن تس این و تس این و تا که صد باز برای مزکر و مهنده است فرقید و از صد به بالا باز میشه عدت های چی چی؟ من که تو بحث حوامل ما اینها رو یکی یکی برای تو دوزید داریم بهترینه که قبل از اینکه این, این بحث رو مباحثش رو بکنید حسابی روش کار کنید بعد گردید دون قسمتی که تو عوامل ما اینها رو جزبه کردیم براتون اون جزده رو یک مطمئه بخوانیم بعد این درست رو مبارسه کنیم که برسرداد براتون این کارش خب المبنیات اینو خودیم المبنیات منها المسمارو مبنیات چند قسمت یکی سیه زمین دازد به هدایی از این بحث شدیم حال آره شد. یکی از مبنیات مزمره زمیره مزمر میگن زمیرم میگن اردو اصطلاح برسیدی از نحنیدی برگن مزمر و زمیر وحوه زمیر کدومه وحوه ماغوز ال متکلمه اون چیزیه که وعز شده برای که نشانگر یک متکلمه شد. مثل انه نحنو حالا یا متکلمه وحده یا متکلمه معلق مطلق او مخاطب یا بیانگر یک مخاطب باشه انتم شما انتم انتم انتم واظع مطلق چه مخاطب مطلق چه ترسی نتیجه جان که مذکر چه با چیزی چه... که میاد وضع میشه برای اینکه بیانگر مون دیگه یا مخاطب مطلقا باشه کش میگن یا بیانگر شخص غائبی باشه غائبی اما قایب اتمن و اتمن خوبه باید دارایی چی باشه؟ مرجع قایبه داری نه خود و اون بوینده میشه مرجعش هم خود خطاب که میکنیم نشون اینه که به کی داریم اینه. اما وقتی بردیم خوبه خوبه به کی برمیگردیم ای احتیاج به کسی داری که خوبه بهش برگرده و معلوم میشه که اون چیز آم لذا میگه قایب سبغزه کرخ دی که بر از رو ذکرش و نامش قبلا ذکر شده آورده شده زکر. یعنی شما گفت که جا از و حور که اول بین ذکر شده زکر. جا از و حور ثقت گرفته زکرش. حالا گاه او ضقت میگیره ذکرش بگید لفظن و رطبتن مثل جا عزایدون و قوبر را گاهی موقع سفتش چیه؟ ترگیری ها مثل اینکه که فرض کنید که مرجع زمین در لفظ چی شده باشه؟ محخر شده باشه مرجع زمین اگر در لفظ محخر شده باشه ولی در رطبه مقدم باشه باز چی داره؟ مجدی حال مرجع زمیر مقدم باشد حالا یا مقدم باشد لفظن و رتبتن یا لفظن فقط مقدم باشد یا رتبتن گرفته باشه مثل جا از و آن ولو حکمن برای این که این سبقت سبقت چی باشه؟ حکمی باشه در و در رتبه سبقت گیره این ولو حکمن شامل اون دو قسمه میشه که تو کتابه اداره خوبیه گردید مرجع زمیر یا قبلنده شده یا مرجع زمیر چیه؟ مهنویه یا مرجع زمیر ها؟ حکمیه حالا مرجع زمین قبلا زکی شده باشه مثل چیمی؟ لا الله لا اله الا لا اله, بر. الا اله, ها اله, ها الا اله بر. الان اینجا خوبه به برمیگرده؟ به بر. الله قبلا شده یا نشده؟ ها؟ قضا رب بکر ان لا تعبدو الا ایه قضا رب بک یعنی بکو کرده ترور به بارتو ان لا تعبدو این که عبادت نکنی ان لا تعبدو الا ایه مگر او را این ایه ها به کی برمیگرده به رب بکر مجای دو مورد دیگه هم داشتیم یه مورد دیگه اش چی بود؟ معجزه ذمیر معنوی. ها؟ معجزه ذمیر معنوی یعنی چی؟ یعنی در لفظ مرجع نیست اما در معنا ما میتونیم اون منزره رو کنیم؟ پیدا کنیم. مثل ا ادد خوبه ا ادد و هوبع عقربونه. تخرب. ا ادد و یعنی چی؟ عدالت بود اقرب اقربوله تقوا او نزدیکتر از به سوره تقوا به تقوا و تنگیز از جنا عدالت چیه خوبه ای برمیگرده به عدل برمیگرده ما عدلی نداریم توی عباره میگه این عدل از کی فهمیده می میشه عدل اعدلو فهمیده میشه اعدلویی که عدل درش خواب میده مشخص یه موقع هستش از زیاغ عبارت ما حکمن رو میفردیم یعنی معنای زمین رو میفردیم مثل اینکه قرآن میخونیم میگه لعب ویه لعب ویه لَكُلْ لَوَاهِ دِلْ مِنْ هُمَا هست برای پدر و مادرش لَكُلْ لَوَاهِ دِلْ برای هر یک از این پدر و مادر و یک ششم خب ما میفهمیم از این موضوع عبارد که لَعَبَوِه باید به برگرده از سیاه عبارد علایهال زمیر قایب مرجن میخواد یا مرجع زمیر سبقت گرفته لفظن آه یا سبقتش مهنویه یا حکومه حالا اگر مستقلا بشه زمیر رو بهش تلفز کرد بشه میگن زمیر چی چی؟ فعل استقل لفا منفصله بشه میگن زمیر منفصله یعنی خودش میتونه محتدا بشه <متلاح> مثل جو عزیدون و هاور یکی از نشانه های زمین و منفصل این که میتونه مبتداش به یکی دیگرش هم اینه میتونه بیاد بعد از اللہ الان قضا رب بکن لا تابونو اللہ یاهو یه در این یاهو بعد از که یعنی مستقلن میشه بهش به چیکار که تلفز کن اگر میخوای استقلالش هم بفهمی یا مبتداش کنی یا بعد از الان ضربتر هشو نمیشه مرتدار کردی یا نمیشه بعدد فعین استقله فمنتصر و الا یعنی اگر مستقله در تلفظ نبود حتما باید به یه چیز دیگری مرتدار میشه تا ما میتونستیم بهش تلفظ کنیم و الا فمنتصر هم میشه چی؟ متصر. حالا یادتون باشه گفتیم زمیر مرتدار سه جزه مرفو اما زمیر مرتدار چی؟ دو جوره مرکو منصوب و گفتیم این میشه پنجتا پنجتان چهار تا داریم میشه چند تا هفتا تا کتا دارم ول متصل و مرکو و وقما هم تا آخر منصوبون یاهو یاهو ما یاهو تا آخر مجرورون به ما بهیم تا درست ول من منفصل اما منفصلش غیر و مجرور مجرور دیگه نیست یا مرفوع او هما هم یا منصوبه یا جا هوا ای جا هما اون مرفوع متصل رو ما چی او خوبه بودیم نه و زربتا مثال بزنیم زربه زربه زربه زربه بود تا آخری این ماله متصل مرفوع زربا خوبه توشه زربا علف زربا خوبه تا آخر منصوبش میشه چی؟ زربا خون زربا خوما زربا هون، مجرورش بهی به ما منفصل مرفو و خوما خون منفصل منفصل ایاهو ایاهو ما هون تا به خم این چند تا شد؟ پنج تا هر کدومم چهار ده تا کندش میشه؟ این بلا یسوع کندیم تو کتابی داری بسید